ژن خودخواه نوشته یا ریچارد تاکینز فصل دهم ده تو پشتم را می‌قاری من پشتت سوار می‌شوم بخش دوم این فکر خود او و کمی بعد تریورس و هر را به سوی چشمگیرترین بزرگترین موفقیت‌های نظریه ژن خودخواه هدایت کرد زنجیره استدلال آن به قرار زیر است نظام تعیین جنسیت هشراهای گروه نازک بال از جمله مورچه، زنبور اصل و زنبور معمولی غیر معمول است. موریانه ها به این گروه تعلق ندارند و در این خصوصیت آنها سحیم نیستند. در لانه هر نازک معمولا فقط یک ملکه بالغ است. او در جوانی فقط یک پرواز به قصد جفتگیری انجام داده، و اسپرم ها را برای بقیه عمرش که ده سال یا بیشتر است ذخیره کرده است طی این سال ها او به تدریج اسپرم ها را روی تخم ها ریخته و آنها را وقتی از میان مسیر خاصی عبور می کنند بارور می کند اما اینطور نیست که همه تخم ها بارور شوند آنها که بارور نشدهاند تبدیل به نر می شون. به این ترتیب جانوری که نر است پدر ندارد و تمام سلول های بدنش فقط از یک مجموعه یک کروموزوم است که از مادر گرفته است به جای اینکه مثل ما دو مجموعه از پدر و از مادر گرفته باشد بنا قیاس فست سوم هر نازک بال نر در سلول های خود به جای دو جلد کتاب کروموزوم فقط یک جلد دارد ولی هر نازک بال ماده از این نظر که پدر دارد عادی است و طبق معمول دو مجموعه کروموزوم در هر سلول بدنش هست. این که یک ماده به کارگر یا به ملکه تبدیل شود بسته به ژنهایش نیست بلکه به این بستگی دارد که چگونه بزرگ می شود. یعنی در هر ماده یک مجموعه کامل از ژنهای ملکه ساز و یک مجموعه کامل از جنهای کارگر ساز یا بهتر بگوییم مجموعه از جنهای تخصصی شده برای طبقات مختلف کارگر سرباز و غیره وجود دارد اینکه کدام مجموعه فعال شود بستگی دارد به اینکه آن ماده چگونه پرورش یابد به خصوص از نظر غذایی که میخورد گرچه مسائل زیادی دخیلند اما اصل قضیه چنین است ما نمیدانیم چرا این نظام غیر معمول تولید جنسی تکامل یافته است بیشک دلایلی وجود دارد اما فعلا فقط را به عنوان یک واقعیت تعجباور در نازک بالان در نظر می گیریم. دلیل اصلی این وضعیت عجیب هرچه باشد با قوائد شسترفته فصل ششم که در مورد محاسبه میزان خیشاوندی بود سر سازگاری ندارد. یعنی اسپرمای یک فرد نر به جای اینکه مثل مال ما همه با هم فرق داشته باشد همه کاملا یکسانند. هر نر فقط یک مجموعه ژن در هر سلول بدنش دارد نه یک مجموعه دوتایی بنابراین هر اسپرم باید کل آن مجموعه ژن را دریافت کند نه یک نمونه پنجاه درصدی از آن را به این ترتیب تمام اسپرم های یک نره به خصوص مانند همند حالا بیایید میزان خیشاوندی بین مادر و پسر را محاسبه کنیم اگر نری ژن آ را داشته باشد احتمال اینکه مادرش همان را داشته باشد چقدر است؟ پاسخ باید 100 درصد باشد زیرا آن نر پدر نداشته و همه ژنهای خود را از مادرش گرفته است. اما حالا فرض کنید بدانی ملکه ای ژن B دارد. این احتمال که پسرش آن ژن را داشته باشد 50 درصد است. زیرا به او فقط نیمی از ژنهای ملکه می رسد. این تا حدی معماگونه جلوه می کند. اما چنین نیست. یک نر همه ی خود را از مادرش گرفته است، اما هر مادر فقط نیمی از جنهای خود را به پسرش می دهد. راه حل این دوگانگی آشکار در این امر نهفته است که نر فقط نصف تعداد معمول ژن دارد. بر سر اینکه میزان واقعی خویشاوندی آنها یک یا یک دوم است، فایده ای ندارد خود را معطل کنیم. این شاخص را ما به عنوان یک ابزار سنجش ساخته ایم و اگر در مواردی برای من دردسر درست کند میتوانیم از خیرش بگذاریم و به اصول اساسی تر تکیه کنیم. از لحاظ ژن آ که در بدن ملکه است احتمال اینکه در بدن پسرش باشد یک دوم است. برای هر دختر هم درست همین میزان است. بنابراین از منظر ملکه زادگانش از هر جنس یا ماده که باشند همان اندازه به او نزدیکند که بچه های آدمها به مادرشان. وقتی به خواهرها می رسیم اوضاع پیچیدهتر می شود. تنی پدر مشترک دارند. دو اسپرمی که نطفه آنها را بستهاند از نظر تمامی جن یکسانند. بنابراین خواهرها از نظر جنهایی که از والدین می گیرند مانند دو قلوهای همسان هستند. اگر یک ماده ژن آ را داشته باشد باید آن را یا از مادر یا از پدرش گرفته باشد اگر از مادر گرفته باشد به احتمال پنجاه درصد خواهرش آن را دارد اما اگر آن را از پدرش گرفته باشد احتمال اینکه خواهرشهم آن را داشته باشد 100 درصد است بنابراین میزان خویشاوندی در خواهران نازکبال مثل جانوران با جنسیت عادی یک دوم نیست بلکه سه چهارم است. نتیجه این می شود که یک نازکبال ماده به خواهران خود نزدیکی بیشتری دارد تا به بچه های خود از هر جنس که باشند که همیلتون پیبرد، اگرچه اگرچه او موضوع را درست به این صورت بیان نکرد. این امر ممکن است در ماده ها این رقبت را به وجود آورد که مادر خود را به عنوان یک ماشین خواهرساز کارآمد پرورش دهند. جنی که به طور غیر مستقیم خواهر میسازد با سرعتی بیشتر از جنی که به طور مستقیم بچه میسازد خود را تکثیر می کند به این ترتیب سترونی کارگرها پدید آمد شاید اتفاقی نبود که به واقع اجتماعی بودن از طریق سترونی کارگران ظاهرا بیش از یازده بار جداگانه در نازک بالان و فقط یک بار در قلمرو دیگر حیوانات یعنی در موریانه ها پیدا شده است اما یک مشکل دیگر هم وجود دارد اگر کارگرها در پرورش مادر خود به عنوان ماشین خواهرساز موفقند باید این تمایل طبیعی مادر را که به همان اندازه برایشان برادر میسازد به نحوی کنترل کنند از لحاظ هر کارگر احتمال اینکه برادری فلان ژن خاص او را داشته باشد فقط یک چهارم است بنابراین اگر به ملکه اجازه دهند به میزان مساوی بچه های نر و ماده تولید کند، پرورش دادن او به سود کارگران نخواهد بود. جنهای زی قیمت آنها به میزان حد اکثر انتشار نخواهد یافت. تریورز و هیر متوجه شدند کارگران باید تلاش کنند تا میزان نسبت جنسیت را به نفع ماده ها تغییر دهند. آنها با استفاده از محاسبات فیشر در نسبت مطلوب دو جنس، که ما در فصل قبل دیدیم مجددا روی موارد خاص نازکبالان کار کردند. معلوم شد برای مادر نسبت پایدار سرمایه طبق معمول یک یک است. اما نسبت پایداری برای هر خواهر یک سه به نفع خواهر است نه برادر اگر شما یک نازکبال ماده باشید موثرترین ترین روش برای اینکه ژن خود را منتشر کنید این است که خودتان از بچه آوری خودداری کنید و مادرتان را وادارید که به نسبت یک سه برایتان خواهر و برادر بسازد اما اگر قرار باشد خودتان بچه بیاورید بهترین راه سود رساندن به ژنهایتان این است که به نسبت مساوی پسر و دختر داشته باشید همانطور که دیدیم تفاوت بین ملکه و کارگر تفاوت ژنی نیست یک جنین از نظر ژنی ممکن است تقدیرش این باشد که کارگر شود یا ملکه اگر بخواهد کارگر شود، نسبت جنسی آن باید یک سه باشد و اگر بخواهد ملکه شود، نسبت جنسی آن یک یک باشد. خب، منظور از این خواستن چیست؟ منظور این است، ژنی که خود را در بدن می مییابد در صورتی به بهترین وجه منتشر می شود که آن بدن برای دختر و پسر به نسبت مساوی سرمایهگذاری کند. اما همان جن وقتی خود را در بدن یک کارگر می‌بیند برایش بهترین روش این است که مادرش را وادارد تعداد دخترهایش بیش از پسرها باشد در واقع تناقضی در کار نیست هر جن باید از اهرم‌های قدرتی که به طور اتفاقی در اختیارش است بهترین استفاده را بکند. اگر خود را در جایگاهی می‌بیند که میتواند روی رشد بدنی که قرار است ملکه شود تأثیر بگذارد مطلوب ترین استراتژی برای استفاده از این تأثیر یک چیز است و اگر خود را در موقعیتی می که میتواند روی طرز رشد بدن کارگر اثر بگذارد، استراتژی و راهبرد مطلوب برای استفاده از این قدرت چیز دیگری است. این یعنی در پرورش دادن تضاد منافع وجود دارد. ملکی سعی می کند به میزان برابر برای نرها و ماده ها سرمایه گذاری کند، کارگرها سعی کنند نسبت تولید مثل را در جهت سه ماده به یک نر پیش ببرند اگر ما در تصویر کردن کارگرها به عنوان پرورش دهنده و ملکه به عنوان ماشین جوجه کشی آنها به بیراه نرفته باشیم شاید کارگرها در رسیدن به نسبت سه به یک موفق بودند اگر غیر از این باشد و ملکه واقعا مطابق انتظاری که از اسمش می‌رود زندگی کند و کارگران برده او و پرستاران فرمانبردار بردار های سلطنتی باشند، آن وقت باید انتظار داشت نسبت یک یک که ملکه ترجیح می دهد تفوق یابد. در این مورد خاص از جنگ بین دو نسل برنده کیست؟ این موضوع باید به آزمایش گذاشته شود. کاری که تریورز و هیر با استفاده از تعداد زیادی از گونه های مرچه انجام دادند. نسبت جنسی مرد نظر نسبت نرها و ماده های تولید مثل کننده است تولید مثل کننده ها موجودات درشت بالداری هستند که در فاصله های زمانی خاصی برای جفتگیری از لانه مورچه به پرواز در میآیند و بعد از آن ملکه های جوان در پی ساختن پرگنه های جدید میروند همین موجودات بالدار را باید برای دست آوردن یک براورد تقریبی از نسبت دو جنس مورد شمارش قرار داد در بسیاری گونه‌ها تعداد نرها و ماده های تولید کننده نابرابر است و این قضیه را پیچیده میکند زیرا همان گونه که در فصل قبل دیدیم محاسبات پیشر در مورد نسبت مطلوب دو جنس نه در مورد تعداد دو جنس جهت مقدار سرمایهگذاری برای نرها و ماده ها به کار میآید تریورز و هیر با وزن کردن مرچه ها آنها را منظور کردند آنها بیست گونه مورچه را برداشتند و نسبت جنسیت آنها را بر حسب سرمایهگذاری در تولید کننده کنندهها برآورد کردند تقریباً به نسبتی رسیدند که به طور قانع ای نزدیک بود به یکسه همان نسبت ماده به نری که این نظریه پیشبینی کرده بود و کارگران نمایش آن را به نفع خودشان به راه انداخته بودند. بنابراین به نظر می رسد در مرچه های مرد مطالعه در تضاد منافعی که وجود دارد کارگران برنده اند. زیاد جای تعجب نیست. زیرا بدن کارگرها که نگهبان پرورشگاه هستند در عمل ورزیدهتر از بدن ملکه است. ژن که که کوشند از طریق بدن ملکه دنیا را تغییر دهند، ده توسط ژن که از طریق بدن کارگران میخواهند دنیا را عوض کنند از میدان به در می شوند. جالب است که در این فضا دنبال شرایط خاصی بگردیم که در آن ملکه نیروی عملی بیشتری از کارگران داشته باشد. تریورز و هیر متوجه شدند که درست چنین وضعیتی را می به عنوان یک آزمون دقیق برای آن نظریه به کار گرفت. واقعیت این است که در بعضی گونه مورچه بردهداری بردداری وجود دارد. در یک گونه بردهدار کارگران یا اصلا هیچ کار عادی انجام نمی دهند یا خیلی بد آن را انجام می دهند. مهارتشان در یورش برای گرفتن برده است. جنگ های واقعی که در آن ارتش های رقیب تا آخرین نفس با هم می جنگند، فقط در انسان و در حشرات اجتماعی مصداق دارد. در بسیاری از گونه های مرچه، طبقه تخصصی شده ای از کارگرها که به عنوان سرباز شناخته می شوند، های جنگنده و ترساوری دارند و همه عمرشان را وقف جنگ برای پرگنه در مقابل ارتش مرچه های دیگر می کنن. یورش برای بردگیری نوع خاصی از فعالیت های جنگی است. بردگیران با حمله به لانه مرچه های متعلق به یک گونه متفاوت، سعی میکنند، سربازان مدافع آنها را از بین ببرند و بچه از تخم بیرون نیامده آنها را به چنگ بیاورند این بچه ها در لانه رباینده خود از تخم بیرون می آیند. آنها نمیفهمند که اسیرند و طبق برنامه عصبی درون سرشتی خود همی کارهایی را که در لانه خودشان به عادی باید انجام میدادند در اینجا انجام می دهند. کارگران بردگیر یا سربازها به سفرهای دیگر برای بردگیری ادامه می‌دهند در حالی که برده‌ها در خانه اند و مشغول پیش بردن امور روزمره لانه مرچه ها، نظافت، تهیه آزوقه و نگهداری از بچه‌ها هستند البته های خرسند از این واقعیت قافلند که با ملکه و بچههایی که مراقبشان هستند نسبتی ندارند آنها ناخواسته راسته جدیدی از برده سازها را میپرورانند. بیشک انتخاب طبیعی با تأثیر بر ژن گونه های برده در تلاش است. سازگاری های مخالف بردهداری برتری دهد. اما از قرار معلوم این تلاشها چنانکه که باید کارآمد نبودند. زیرا برده به شکل یک پدیده گسترده وجود دارد. از دیدگاه فعلی ما نتیجه با اهمیت بردهداری این است که گونه بردهساز اکنون می تواند میزان نسبت دو جنس را انطور که خود ترجیح می جهت دهد. زیرا بچه های واقعی او یعنی بردگیر دیگر در پرورشگاه ها کاره ای نیستند و قدرت حالا در دست برده هاست. برده ها خیال می کنند دارند از زادگان خودشان نگهداری می کنند و احتمالاً آنچه را که در لانه خودشان به صلاح بدانند انجام می دهند تا به نسبت سه یک برسند که به نفع خواهران است اما ملکه یک گونه بردساز از اقدامات متقابل در امان است و هیچ نیروی انتخابی وجود ندارد که با تأثیر بر برده ها این اقدامات متقابل را خونسا کند زیرا بردهها هستند نسبتی با بچه ندارند برای مثال تصور کنید در یک گونه مورچه ملکه از طریق همبو کردن تخمهای نر با تخمهای ماده سعی می کند. نرها را ماده جل بدهد انتخاب طبیعی به طور معمول به هر گرایشی در کارگران که در جهت برملا کردن این ظاهر سازی باشد میدان میدهد. ما می آن را به صورت یک نبرد تکاملی مجسم کنیم که در آن ملکه مدام رنز را تغییر می و کارگران مدام رمز شکنی می کنند. در این جنگ کسی برنده است که جنهای بیشتری از خود را از طریق تولید مثل کننده ها در بدن نسل بعد داشته باشد و همونطور که دیدیم معمولا کارگرانند هم که برنده هند. اما وقتی ملکه یک گونه بردساز تغییر رمز می دهد کارگر نمی توانایی شکستن آن را در خود پدید آورند به این دلیل که آن ژن رمز شکنی که در برده کارگر هست در بدن هیچیک از افراد تولید مثل کننده وجود ندارد و به این منتقل نمی شود تولید مثل کننده ها همه به گونه برده ساز تعلق دارند و خویشاوند ملکه و نسبتی با برده ها ندارند اگر به نفی جن برده ها به درون تولید مثل کننده ها راه یافته باشد در میان تولید مسکننده کنندههایی دیده می شود که اهل لانه اولیه مورد هجوم قرار گرفته هستند در این صورت بردای کارگر دست به کار شکستن رمزی میشدند که اشتباهی است بنابراین ملکه یک گونه بردساز می تواند به راحتی رمز را تغییر دهد بدون اینکه خطر انتشار ژن رمز شکن در نسل بعد وجود داشته باشد ماحصل این بحث پیچیده‌ای است که در گونه بردساز باید انتظار داشته باشیم. نسبت سرمایه گذاری در تولید مثل هر دو جنس به یک یک نزدیک شود، نه به سه یک. استستان فقط همین یک بار است که ملکه خود کامگی می کند. این درست همان چیزی است که تریورز و هیر دریافتند. هرچند آنها فقط دو گونه بردساز را زیر نظر گرفتند. باید تاکید کنم که داستان را به صورت آرمانی بیان کردم زندگی واقعی اینطور مرتب و منظم نیست. برای مثال، به نظر میرسد در آشناترین حشری اجتماعی یعنی در زنبور اصل کار کاملا برعکس است. یعنی سرمایه‌گذاری خیلی بیشتری روی نرها صورت میگیرد تا روی ملکه، کاری که نه از دیدگاه ملکه مادر معنیدار به نظر می رسید. نه کارگران همیلتون راهلی برای این معما پیشنهاد کرده است او میگوید وقتی یک ملکه زنبور اصل کندو را ترک میکند گروهی از کارگران پرستار او را همراهی و کمکش میکنند که پرگنه جدیدی بسازد آن کندوی اولیه این کارگران را از دست داده است و هزینه جایگزینی آن را باید به حساب بخشی از خرز تولید مثل گذاشت زیرا؟ به ازای هر ملکهی که می تعداد زیادی کارگر اضافی باید تولید شود سرمایه‌گذاری برای این کارگران اضافی را باید جزئی از سرمایه گذاری برای ماده های تولید مز کننده دانست وقت محاسبه نسبت جنسیت آن کارگران اضافی را باید از نظر تعادل با نرها سنجید بنابراین این مسئله یک مشکل جدید برای این نظریه یعنی نظری جن خودخواه محسوب نمی شود. در کارکرد دقیق این نظریه یک لنگی دیگر این است که در بعضی گونه ها ملکه جوان در پرواز خود برای جفتیابی به جای یک نر با چند نر آمیزش می کند. به این معنا که میانگین خویشاوندی بین دخترهایش را از سه چهارم کاهش میدهد و در موارد افراتی ممکن است به یک چهارم برسند. گرچه خیلی منطقی نیست. ولی این تمایل وجود دارد که این کار را ضربه زیرکان از طرف ملکه به کارگران در نظر بگیریم. اتفاقا شاید به نظر برسد به همین دلیل است که کارگران ملکه را در پروازهای جفتی همراهی می کنند. میخواهند مانع شود از اینکه بیش از یک بار جفتگیری کند. اما این کار اصلا کمکی به ژن خود آن کارگران نمی کند. فقط به درد ژر کارگران نسل آینده خورد. در میان کارگرها هیچ احساس همبستگی کاری به عنوان یک طبقه وجود ندارد هر کدام از آنها فقط به فکر ژنهای خودش است شاید در هر کارگر این میل بوده که مادر خود را همراهی کند اما هرگز این فرصت برایش مقدور نبوده زیرا در آن زمان نطفهاش هنوز بسته نشده بوده است هر ملکهٔ جوان در پرواز همسریابی خود خواهر نسل فعلی کارگران است نه مادرشان بنابراین کارگران بیشتر طرف او را میگیرند نه طرف کارگران نسل آینده را که خواهرزادهشان است دیگر سرم گیج میرود و وقتش است که داستان را به سرانجام برسانم برای کاری که کارگران نازک بال برای مادرشان انجام میدهند از قیاس پرورش استفاده کردم مزرعه آنها یک مزرعه ژن است این کارگرها از مادرشان با عنوان تولید کننده که در تولید نسخه های از ژن آنها از خودشان کارآمدتر است استفاده می کنند. ژن حاصل خط تولید در بسته هایی به مفهوم افراد تولید مز شده قرار می گیرند. این استفاده از پرورشدار نباید با مفهوم کاملا متفاوتی که در حشرات اجتماعی به کشت می پردازن اشتباه کنیم. حشرات اجتماعی و دیرتر انسان ها، کشف کردند که کشت منظم غذا میتواند کارآمدتر از شکار و گردآوری آن باشد. برای مثال چند گونه از مورچه های دنیای جدید و کاملا جدا از آنها موریانها در آفریقا مزرعههای های کشت قارچ دارند. معروفترین آنها مورچه هایی هستند که به چتر آفتابی آمریکای جنوبی معروفند اینها مورچههایی بسیار موفقی هستند. در پرگنه هایی که از آنها یافت شده است بیش از دو میلیون مورچه است. لانهشان شامل مجموعه پیچیده ای از راهروهای تودرتوی تو در توی است که سه متر یا بیشتر عمق دارد و با درآوردن بیش از چهل تن خاک ساخته شده است. مزرعه های قارچ در این راهروهای زیرزمینی است. نیست. موورچه ها عمدن نوع خاصی از قارچ را در بسترهایی از کود ویژه ای میکارند که از جویدن و خورد کردن برک ها آماده کالگران کارگران جای اینکه برگها را مستقیما مصرف کنند آنها را کود می‌کنند اشتهای پرگنه مورچه‌های چتر آفتابی برای برگ فوق‌العاده است گرچه برگ غذای خود آنها نیست بلکه غذای قارچ‌هایشان است همین آنها را به یک آفت اقتصادی بزرگ تبدیل کرده است در نهایت قارچها ها را برداشت می کنند و به عنوان غذا میخورند و به بچه هایشان می دهند. ها در شکستن مواد درون برگ بهتر از معده خود مورچه عمل می کنند و بنابراین این برنامه به نفع مورچه هاست. شاید به نفع ها هم باشد هرچند در آخر درو می شوند. ها بهتر از سیستمی که هاگ خودشان برای پخ شدن دارد آنها را منتشر می کنند. مورچه ها مزرعه های قارچ را وجین می کنند و آنها را از انواع دیگر قارچ های ناآشنا پاک می کنند شاید به این ترتیب با حسب رقیب به قارچ های آشنای مورچه ها هم سود برسد می توان گفت نوعی رابطه ایسارگری دوجانبه بین مورچه و قارچ وجود دارد شایان ذکر است نظامی شبیه این کشت قارچ در میان موریانه ها هم که هیچ نسبتی با آنها ندارند پیدا شده است